بسم الله الرحمن الرحيم شمارية 24 كتاب ما يجوز الاجتهاد فيه أنتك جائزة اجتهاد دران ما يموصول هست بمعنى أنتك جائزة اجتهاد دران بفرمايد ليست الأحكام الشرعية كلها تصلح أن تكون محل اجتهاد ولهذا قال بعض علماء الأصولي المجتهد فيه هو كل حكم شرعي ليس فيه ضليل قطعي لقشانك إن الأحكام الشرعية التي فيها أدلة قطعية لا تحتمل الإجتهاد والاختلاف مثل وجوب الصلاة وحرمة الزنا ونحب ذلك دي قدهاش المسائل والمسائل كدرش إجتهاد جائه هاست نميش رو حرمسة ليه ومد إجتهاد كرد. مثلا نميش ومد آغة إجتهاد كرد. نمازی وجود دارد یا وجود؟ نه نه. بله. میگه نیستند تمام احکامات شرعی یا به عبارت دیگر تمام احکامات شرعی صلاحیت اینو ندارند که محل اجتهاد باشند. لهذا اولماء بعضی از اولماء اصول گفتند المجتهد فيه مجتهد فیه. یعنی اون مسائلی که درش اجتهاد وجود داره مجتهد فیه. هر حکم شرعی هست که درش دلیل قطعی نباشد پس تمام مسائل مجتهد فی نیستن اون مسائلی مجتهد فی هستن که درشون دلیل قطعی نباشه یعنی احکامات شرعی که عدلهشون عدله قطعی هست درشون اجتهاد و اختلاف وجود نه دارد مانند چی؟ مانند وجوب نماز حرام بودن زنا و امثال این چیزها پس اینا عدلهشون قطعیه اینا دیگه مجتهد فیه نیستن نمیشه در مورد اینا چکار کرد؟ اجتهاد کرد اما الاحکام التي لم ترد فيها نصوص قطعیتون وإنما ورد وردت فيها نصوص ظنية الثبوط أو الدلالة فهي التي يجري فيها الاجتهاد ويجري الاجتهاد أيضا في المسائل التي لم يرد نص من الشارع بشأنها فيستر المجتهد إلى اللجوء إلى دلائل الشريعة الأخرى من قياس وغيره أما أحكاماتك دراب تباو أنها نصوص قاتيفا ردنا شده بلکه نصوص یا ذنی و ثبوت هستند یا ذنی و دلالت هستند ببینید یا ذنی و ثبوت یا ذنی و دلالت ذنی و ثبوت مثل اخبار آهاد ذنی و دلالت مثل اونی که بیشه ازش تن تا برداشت کرد برداشتای مختلف کرد مثلا به عنوان مثال قرآن همش قطعی و ثبوته متواطره دیگه ولی شما ببینی بعضی از آیات ذنی و دلالت هستند یعنی در دلالتش قطعی نیست برداشته مختلفی کرد میگه اون احکاماتی که نصوص درش قطعی نیستند نصوص یا و ثبوتند یا و دلالت همونایی هستند که درشون جاری است و همچنین اجتهاد جاری هست وجود دارد در اون مسائلی که نسی از جانب شارع, شارع براشون وارد نشده اینجاست که مجتهد مجبور میشه به دلائل دیگه شرعی رجوع بکنه از جمله مانند قیاس و ادله دیگر پس اون مسائلی که در رابطه با اونا نسی وارد نشده آقا نماز مثلا در هواپیما براش نس اومده مسائل چیزای جدید میمه مسائل مثلا بحثای جدید بحثای خلاصه اون بحثایی که در رابطه با اونا نسی وارد نشده دوی سبحان الاجتهاد لا یتقید به زمان و مکان. این هم بحث خیلی قشنگه بگه آقا اجتهاد متقید به زمان و مکان نیست معنا، معنا این حرف چیه؟ انه ليس مخصوصا بوقت دون وقت ولا بمکان دون مکان لان ما بناه توافر و شروطه في الشخص و هاده امر ممکنون في كل عصر فلا یجوز قصره على زمان دون زمان فإن فضل الله واسع قیرو محصور بالمتقدمین دون المتاخرین خوب دقیقت باشید. میگه اجتهاد مقیده به هیچ زمان و مکانی نیست به این معنی که مخصوص یک وقت خاصی نیست مخصوص یک مکان خاصی نیست اجتهاد زیرا مبنای اجتهاد اینه که مجتهد شروطش رو داشته باشه و این مسئله ممکن است در هر اصری پس جایز نیست که اجتهادو مخصوص زمانی خاص کرد نه زمانهای دیگر یا مکاری نه مکانهای دیگر فضل الله متعال و است. محصور در متقدمین نیست این بحث خیلی قشنگ متاسفانه اجتهادو و بعضی ها اومدن در یه وقت خاصی چه کردند، کردن؟ مختصش کردن یا در مجتهدی خاص این که ما بیایم بگوییم آقا فقط امام ابو حنیفه نومان امام شافعی امام مالک امام احمد مجتهد بودن این بزرگترین ظلم به شریعت اسلامه شریعت اسلام این ظرفیتو دارد که در طول تاریخ درش مجتهد بیاید شریعت اسلام این ظرفیت رو دارد که در طول تاریخ مجتهد بکنه اصلا همینی که شریعت اسلام تمام مسائل ریز و پیزو در قرآن و سنت بیان نکرده بلکه قواعد کلی داده همین خاصیت شریعت ای رو میتلم در هر عصری مجتهد باشد باید در هر اصری مجتهد باشد و قرآن کریم هم میگه فاسالوا اهل ذکری ان کنتم لا تعلمون از اهل ذکر بپرسید اگر نمیدانید خب در هر عصری نادان اونی که نمیداند وجود دارد پس در پس, پس لابد در هر صورتی مجتهد هم باشد مجتهد هم ببینید مقید کردن اجتهاد متع... بر این باور بودن که اجتهاد فقط در اصری خاص وجود داشته است یا در مکانی خاص این ظلم به اسلامه. محصور کردن مشتهدین هم در افراد مشخص هم این ظلمه آقا طرف شرایطش رو داشته باشه شرایطی که بیان شد این که ما بیاییم فقط نه این چهار نفر یا این پنج نفر فقط مشتهد بودن دیگه مشتهد دیگهی نمیتونه بیاد این خودش چیه؟ ظلم بزرگ اريك پیروان یک مجتهد بیان بگویند مجتهد ما فقط مجتهد بوده و مجتهد دیگه نمیتونه بیاد این حرف بدون دلیلیست و على هذا ال... و على هذا فالاجتهاد باقی الى يوم القيامه ومباح للجميع بشرط ان تكمل في الشخص ادوات الاجتهاد وشروطه فلا يرقى إلى هذه المرتبه وهذا المنصب الشريف الا اهله وهم اهل الاجتهاد حقا میگه بر این اساس اجتهاد تا روز قیامت باقی است و برای هر مجتهدی است و برای همگان است به شرطی که عدوات اجتهاد و شروط اجتهاد رو داشته باشن البته با این ملاحظه که به این رتبه و به این منصب شریف هر کسی نمیرسه اونی میرسه که احلیتش رو داشته باشه شروطش رو حالا یک تلوی که عربی هم بلد نیست بیاد اجتحاد بکند این که دیگه دروازه گمراهی در دین چی میشه باز میشه نه اون تعصبی که آقا خلاص بعد از اون چهار نفر امام مشهور رحمه الله دیگه مشتهدی دیگه ای نمیاد نه اون تعصب و نه که یکی بیاد ادعا بکنه که نه دیگه هر کسی بيات بكولي كيلويني. ما علي دوستو شيش حكم الاجتهاد حكم اجتهاد شاس الاجتهاد واجب على من كان اهلا له وعلى المجتهد ان يصل الى الحكم الشرعي بطريق النظر والبحث في الأدلة، وما يؤدي اليه اجتهاده هو الحكم الشرعي في حقه الواجب اتباعه فلا يجوز له تركه تقلیدن لغیرهی حکم اجتهاد واجب بر کسی که اهل اجتهاد هست و مجتهد است که به حکم شرعی برسد از طریق نظر از طریق بحث در عدله شرعی و به هر نتیجهی که با اجتهادش به اون رسید اون حکم شرعی در حقش هست و واجب است که به همون نظریهی که از راه اجتهاد بش رسیده پیروی بکنه اونه اون رو اون رو وجائز نیست که به خاطر تقلید شخصی دیگر بیاد نظرش رو چکار بکنه مجتهد ترکش بکنه چون در شریعت اسلام تقلید برتری از چه دارد چه اجتهاد برتری از تقلید دارد اقا اون نظریه شما مجتهد به اون نظریه از روی اجتهاد مش رسیدی به این نتیجه رسیدی که این قول برتر است تو دیگه حق نداری برید چه کار تقلید بکنید. ممکن است اون شخص مقلد در این اجتهادش به خطا رفته باشد در چی رفته باشد؟ به خطا یکی از بزرگترین اسبابی که امروز مثلا تعصب خاصی وجود دارد همین است که میگویند نه این مشتهد به خطا آقا جز شخص رسول گرامی اسلام صلی علیه و وسلم که اون معصوم بوده است در بحث بیان دین جز از رسول گرامی اسلام صلی علیه و وسلم که معصوم بوده است در بحث رسالت بشته هیچ کدومشون هیچ کدومشون بلا استثناء از خطای در اجتهاد در امان نبودن از امام نومان ابو حنیفه نومان بگیر تا مجتهدین معاصر اینیل که ما روی یک مجتهدی تأثبی بیجا و غلط داشته وشی این؟ فکر خطرناک اغا ما مجتهدین رو باید اکرام کنیم ما مجتهدین رو باید بشون تعزیم قائل بشیم احترام قائل بشیم ولی نبه این معنا که بگیم اونا مثل پیامبران چی بودند محسوم, محسوم بودند خوب دو ایستو تغییر الاجتهاد و ناقضه و نقض اجتهاد ها اومده اجتهاد کرده به بده اذا تغير اجتهاد المجتهد في مسألة فعليه أن يعمل بمقتضى اجتهاده الجديد ويفتي به ويترك قوله الاول زمانی که تغییر کرد اجتهاد مجتهد در مسئله ای پس بر اوست که به مقتضای اجتهاد جدیدش عمل بکنه. اون چه که اجتهاد جدیدش میگه به اون عمل بکنه و به اون فتوا بده و قول اولش را چکار بکند ترک بکند. شما موقعی که میرید نظریات امام بزرگوار امام شافعی رو بررسی میکنید میبینید که در خیلی از مسائل قدیمش کار کرده رجوع کرده. امام ابو حنیفه نومان امام مالک امام احمد حمل و اعمه دیگر خب من چرا این سه بزر... چار بزرگوار رو بیشتر اسم میارم به خاطر این که اینا پیروانی دارند پیروان متوجه باشند که خود اعمه بزرگوار از آرای خود کار کردند رجوع کردند شاگردان اونا در خیلی از نظریات نظریاتشون رو قبول نکردند اگر نظریات بزرگان به این معناست که بشكل قاطیت بعد اصول پیروی کرد، شاگرد حق نداشت که مخالفت بکنه، همین خود نظریه جدید دادن شاگرد، اینو میگه که آقا این امام بزرگوار معصوم، نبوده و اذا كان المجتهد حاکما و قضا في مسألة بحكم معین حسب اجتهاده، فلا يجوز لحاکم آخر نقض هذا الاجتهاد، میگه زمانی که مجتهد حاکم هم بود، یک کس مشتهد میکنه فتوار رو میده یک هست در مشتهده است و حاکم میگه زبانی که مشتهد حاکم بود و در یک مسئلهی به یک حکم معین قضاوت کرد بر حسب اجتهاد پس جایز نیست حاکمی دیگر بیاد اون اجتهادشو شکار بکنه نقص بکنه چون اینجا حرج مرد در حکومت چی میشه پیش بيش بیاره بله لأن القاعدة ان الاجتهاد لا ينقضو یا لا ینقضوا بمثله اجتهاد با اجتهاد بمثلش بن با نص ناقا اجتهاد با اجتهاد اجتهاد با اجتهاد میگه اجتهاد نقض نمیشه با مثل خودش با نص میشه اما با اجتهاد دیگر اگه جوری بشه دیگه هر جو مرد پیش میاد آقا حاکم وده قضاوت کرده که اینجا میراثه شما اینه آ مثلا در مسئله جد و اخوا اونجا مسئله اجتهادی میشه مسئله چی میشه حاکم ورده ب... تریقه یکی از دو نظریه که هم در صحابه اختلافی بوده هم در بعدیا تا امروز بوده نظر داده اینجا دیگه با نظریه اجتهاد مشتهدی دیگر اون نظریه حاکم نقض نمیشه نا ولکن لو ارزت لو اورزت مساله اخرى اخرى مثل الاولى علی الحاکم نفسهی وبدأ له رأي جديد في هذه المسألة فإن عليه أن يحكم باجتهاده الجديد أما ما حكم به أولا فلا ينتقض ي... بل يبدأ ميج ولكن لو أردت مسألة أخرى مثل الأولى على الحاكم نفسه وبدأ له رأي جديد في هذه المسألة فإن عليه أن يحكم باجتهاده الجديد أما ما حكم به أولا فلا ينتقض بل یمضا یا بل خب میگه اگر مسئله دیگر مثل مسئله اول بر حاکم خودش پیش اومد و رعی جدیدی در اون مسئله براش آشکار گشت به جدیدی رسید میگه بر مجتهد است که با بر حاکم است و بر اون مجتهد است که به اجتهاد جدیدش حکم بکنه اما اون حکمی رو که قطعا داده چه قبلا داده اون دیگه نقص نمیشه بلکه اون سر جای خودش اجرا میشه ولی جدیدن طبق اون چیزی که به اجتهاد رسیده طبق اجتهاد جدیدش چی کار میکنه فتوه میده و حکم میکنه نه اون قبلش در اون, اون عملی بوده بعد برای دوتا شخص قضاوتو کرده اون که دیگه باطل نمیشه اما جدیدن که فتوهاش اومده اگر فتوه... وده برای شما دو نفر قضاوتی کرده حقو به شما داده بعد سالیان دیگه اینو نبیاد که باطلش بکنه ولی جدیدن طبق فتوه چشکو عمل بکنه فتوه جدیدش دوی سو هشت تجزو الاجتحاد جز, جز بودن اجتهاد این هم بحث خیلی قشنگه میگه و هو کون العالم مجتهدن فی مسألة نودون غیره ها نظراً لتوافر وسائل الاجتهادي له في هذه المسائل فإنه له أن يجتهد في هذه المسائل وإن كان غير قادر على الاجتهادي في غيرها تجزء اجتهاد إن هس كي عالم در يك مسألة مجتهد باشي أما در مسائل ديگر مجتهد نا باشي ما توجه بإن كي وسائل اجتهادو در اين مسألة داره مثل شما مبيني در مسألة ميراث شرائط شو داره؟ ها؟ میگه پس این حق و داره که در این مسئله‌ای که اون ادوات اجتهادو داره اجتهاد بکنه. اگر چه که در مسائل دیگر اون ادوات رو نداشته باشه، شروط رو نداشته باشه. پس اجتهاد تجزوب پذیره. شما میتونید در اون مسئله‌ای که مثلا در مسئله صلات اومده، روی تمام احادیثش کار کرده. اما در مسئله مثلا سیاست شرعی یا در مسئله فلان مسئله یا در فلان مسئله کار نکرده خب مشکلی نیست میگه این حق داره که در اون ای که ادواتش رو داره اجتهاد بکنه و ذهب بعض الولماء الى منع تجزه الاجتهاد ولی بعضی از علماء گفتن نا ممنوع تجزه الاجتهاد والقول الاول هو الراجح اما ایشون میفرماید که قول اول راجه هست. کدوم نظریه یعنی همونی که تجزع اجتهاد جایز است وجود دارد اون شخصی که در مسلهی مجتهد است، در موضوعی مجتهد است در اون مسئله چکار بکنه فتوا بده اجتهاد بکنه بله.